ای قصه بهشت زکویت حکایتی شرح جمال هور ز رویت روایتی انفاس ایسی از لب لعلت لطیفی آب خزر ز نوش لبانت کنایتی هر پاره از دل من و از قصه قصهی هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی که ایتر سای مجلس روحانیان شدی گل را اگر نبوی تو کردی رعایتی در آرزوی خاک در یار سوختین یاد آوری سبا که نکردی حمایتی ای دل به حرز دانش و عمرت به باد رفت سد مایه داشتی و نکردی که فایتی بوی دل کباب من آفاغ را گرفت این آتش درون بکند هم سرایتی، در آتش ار خیال رو خشده است می دهد، ساگی بیا که نیست زدو زخش کایتی، دانی مراد حافظ از این درد و غصه چیست، از تو کرشمه یوز زخسرو انایتی.